در سهی سی و شیش هم حقش بود مصنف این افعال قلوب رو کجا ذکر کنه تو بحث نواسق تو نواسق شیش تاست ایشون رو ذکر این افعال قلوب رو توش ذکر نکرد اونجا ذکر میکنن همه این آوردش تو بحث متعلقات بیل این در خلاف اون است که نحوی درش اجمال دارن که این رو در بحث نوازه چون اینم بر سر خبر در میان بیل حکم مقتلاخبر تردیم مثل افعال نوازه مثل افعال مخاربه اگر قرار بود این بیاد اینجا جز متعلقات خودش رو افعال نوازه نه پس جاش اونجا بوده در بین نوازه این زنگی فصل افعال و غلوم ما خدمتون عرض کردیم تو هر دو تا کتاب فقری که خوندیم که افعال به دو دسته درسیم میشن یکی افعال جواری و یکی افعال جوانی جواری ها اونهایی که با اعضا و جاره و جواره انجام میگید مثل زدن، خوردن، دیدن، کشیدن با. افعال جوانی اونهایی هستند که با قوای درونی انسان مثل فکر تابان کلم تفکر ازید یا فکر ازید خب با چی فکر؟ او باطنی بود عرف تو زید رو شناختم با چی؟ پس اون فکرش یه مفعولی شد عرفتش دو مفعولی شد آم اما بهچی؟ لازم شد عرف توش یک مفعولی شد بهلهایی که دو مفعولی هستند از اینها ان از این افعال جوانه. و اون دو مفعولی هایی که این صفت رو هم دارن یعنی دو مفعولی ها اینطوری هست که مفعول اول دوبانشون در از چی بوده؟ مبتلاب و خبر بوده. به این نوع فل قلبی فقط میگن افعال یعنی فعل قلبی درست ممکن لازم باشه مثل کردم کردن متعدی به یک مفعول مثل هرفت اما اونی که دو مفهولیه و مفهوله اولش محتده خبره فقط به این قسمش میگن افعال قلوب مثل تو و زیدن آلما یعنی یقین کردم زید آلما پس وقتی میگه افعال قلوب شامله این دست است درود و اگرم بهشون میگن افعال قلوب یعنی افعالی که با قواهی باطنی با قلب تحفیش نبو افالو افالو گروه افالی هستند که تدخل ال الاسمیه داخل میشن به جمله اسمیه با لبیان ما نشأت منه برای چی داخل میشن به جمله اسمیه لبیان ما نشأت برای بیان کردن آنچه که نشأت گرفته منه از این فعل قله بیان ما نشأت منه یعنی نشأت اون فیلم افعال من ها از او. بنای بیان آنچه که معنایی که نشأت گرفتند این فیلم ها از اون. یعنی من ها زمینش برمیگرده به ما آید سلب محصول نشعت زمینش به کی برمیگرده به افعال خلو الان نگاه کنید حد خلو علل اسمیه داخل میشن بر اسمیه بیان ما ما یعنی مثلا یقین شد برای بیان کردن یقین و شکی که نشأت نشعت گرفتن این فعل ها از او از اون یقین و شک. آه؟ یعنی شما اگر به زیدن آلمان علم تو داخل میکنید و میگید علم تو زیدن آلمان این علم تو میاد چیکار کنه که بیان کنه آنچه را که خودش ازش نشعت گرفته یعنی یقین کردن رو برای زیدان یعنی میان معنای شک و یقین رو در اون جمله اسمی که کنند. کنن تدخل علل اسمیت لبیان ما برای بیان معنایی که آنچه که نشعت گرفتن این افعال از اون آنچه که این افعال نشعت گرفتن به وجود اومدن از او چه چیزاییه که میان اون رو بیان کنند؟ یعنی فعال ها میان برای که بیان کنند معنایی رو که ازش نشأت گرفتن اون معنا چیه؟ من بیان ما رو میکنه من زنه او یقینه از شک یا یقینه یعنی اگر از همون پرسیدن افعال غلوب به چه دلیل سلام افعال غلوب چرا وارد جمله اسمیه میشن؟ میگیم به دلیل این که در اون جمله اسمیه بیان کنن معنایی رو که از خود، از نشعت گرفتن، اون معنا چیه؟ در زنان تو شکه، در علم تو چیه؟ یعنی <تصفيق> میان یقین و شک رو به اون جمعه اسمیه تنظریم <تصفيق> لبیان ما نشعت من ها، من زنن او یا و تن سبل و اینها نصد میدن به مقتدا ول خبر و خبر هر دور رو نصد میدن در حالی که این مقتدا خبر میشن چی؟ به دو دوتا مفعوله خب معلومه مفعوله اولش میشه چی؟ مبتدا مفعول سانیش میشه حالا همین تک بودش تا بنای حذف و اهد و ما جایز نیست حذف کردن یکی از اینها وحده به تنهایی یعنی یا مبتدا رو حذف کنی یا خبر را حذف کنی که مفهول اول و دوم شدن این صحیح بلد. و این رو هم گفتیم چرا مثل باب اعطای تو نیست باب اعطایان دو معقولیه که معقول اولش فاعل و مفعول سانیش مفعول در معنا اعطای تو زیدان در همان اینو میشه با بگیم اعطای تو زیدن. یا بگیم اعطای تو در همان مفیده قاعده میده میگم من درهمی اعطا کردم یا بگم من به زید پولی دادم من به زید اعطای کردم مفیده اما در مورد علم تو و زنن تو درست نیست چون شک و یقین میخواد بره رو جمله به ختم کنیم ما میگیم شک داریم یقین داریم به این مطلب به این موضوع به این کلام لذا اگه یه جزش رو بکنید دیگه کلام به کلام میگه. خودش باقی نیست نمیشه بگیم علم تو زیدم یقین کردم زید را. یقین چی؟ یقین کردم عالم است که پس بنابراین حذف یکی از این مفایی از این دو مفعول جایز نیست یکیشون به تنهایی جایز نیست ولایه یه حذف و حهده ما وحدهو حذف یکیشون به تنهایی جایز نیست البته حذف اقتصاری یعنی حسبه بدون قرینه حسبه بدونه قرینه حسب یعنی اگه بدون قرینه شما بیاید حسب بکنید درست؟ نیست ولی اگه قرینه باشه خب شما حسبش بکنم مشکلی نداره. نه. مثلا من به شما میگم من علمت یفتی کنید من علمتهو آلمان یعنی چی؟ من علمتهو آلمان چه کسی رو شما یقین کردی که آلمه چی رو یقین کردی آلم علم تو زیدن علم تو زیدن یعنی یقین کردم زید را خب معلوم مفهولی ثانیش افتاده با قرینه اون عالمن قرد میشه علم تو زیدن آلمان. من یقین کردم زیدن اگر قرینه باشه هست میشه قرینه نباشه اکتفاع بر یکی از دو مفهول جایز بگیر از این عبارت و این باید اینو استفاده کرد یعنی طبق قاعده اینطور استفاده میشه که اگر هر دو تاشو حذف کنیم چی باشه ولو که قرینه نباشه درست باشه چون میگه اکتفا کردن حذف کردن یکی از مفعولین به تنهایی جایز نیست یعنی اگه دو تاش حذف بشه چی جایز آه؟ ولو قرینه نباشه خب غلطه حذف وقتی یکیشو حذف میکنیم کلام معناست، غلطه دوتاشو هست کنید چی میشه؟ دوله غلط میشه دوله غلط میشه پس اونی که از عبارت شیخ باید استفاده کرد اینه که بگیم یکیشو که هست میکنیم کلام دیگه قابل فهم نیست اگه دوتاشو هست کنیم بیشتر دوتاشو هست کنیم بیشتر یعنی اگه قرینه نباشه شما هر دوتا مفعول هست کنیم بگید علم تو فهم. یا بگید زنن تو فقط غلطه به چه دلیل غلطه به دلیل که انسان خلاصه به یه چیزی یقین داره به یه چیزی شک داره باید بگید که به چی یقین داری به چی شک داری علام تو یعنی یقینی دار زنن تو هم یعنی شک دار نمیگفتیم ما میدونستیم انسان به خیلی چیزها یقین داره به خیلی چیزها پس بلای جوز و حذف و عهده ما وحده هو از این عبارت خلاصه کلام نتیجه گرفت مفعول این افعال خلوم چه یکیش چه هر دو اگر بخواهد بدون قرینه هزب شود چیه؟ ولی اگر قرینه وجود داشته باشد قرینه وجود داشته باشد هزب کردن. این معقول ها یا یکی از اونها اشکالی بگید حضبگرده یکیش یا هر دو اشکالی یا عبارتشه در این خصوص یه مقدار ناقص ولایه جوزه هزف و عهده ما و دهو حالا اینا چه فیلقای هستند میگه وحیه وجده یکیش وجده است. و الفا یکیش هم چیه الفا یا یعنی لطایق قنر خبر برات حیا کن خبر است نسبت به اسمش. این شما وقتی بعد جدای میاری اینکه. تو اکنون آیه مساله. النهم ألفاو آبا اهم زالین النهم هم یعنی همانا ایشان. هم اسمش اسم این ناس. ألفاو آبا اهم زالین کلنج جمله خبر این ناس. ألفاو فعل تو دفاعه آباه اهم مفعول اوله که مبتدا بوده زالین مفعول سانیه که خبر یعنی به درستی که ایشان یقین کردند پدرانشان را گمراهانی یعنی یقین کردن که قدرانشان یه مش گمراه بودن. یه مش آدم های از راه و آباه زالین برای تیقن چی بود؟ خبر و و جعله یکی دیگه جعله و زعمه بیگری دی زعمه این دوتا چی؟ لزن نهی برای زن خبره یعنی شک داشتن نسبت به خبر برای مثال بزن میگه چشم زعم لزین کفرو ان چی؟ لن رو دارن دارن است. دارن لن یعنی چی؟ شک کردن نه؟ یا یوب. یوب از تو باشه حالا ممکنه رو چون باید از نظر ترکیبی تغییری نداره زعمفه من تو زهنم انلن یوبعصو زحمه فعل اللذینه چیه فائلش کفرو سله یلذین ان یوبعصو یا انلن یوبعصو ان مستریگست و فعل چی چی بگید. و فعل مجهور نای فائلش هم فا. یه نکته ای رو اینجا بیدیم این که مستر مواول مستر مواول که از ان و ان به دست می آید مصدر مواولی که از ان و ان به دست می آید می تواند محلا منسوب باشد می تواند محلا منسوب باشد و صد مسد دومد فعول افعال غلوب را کنن و صد ما صد مثل احسبن ناسو احسبن ناسو ان یوت ان یوت رکو الان هم حسبه فعله ان ناسو فاعلش. ان مثل همین یوب اصول فهر مشهور و نارفایل و انم انه مسترگیه صده مسده چی رو کرده؟ دو مفعول هسته برای دیگه دو مفعول اینجا هم ان یوب اصول صده مسده دو مفعوله سه انم رو کرده. دیگه دنبال دو مفعول رو گیر. حالا ممکنه با ان باشه؟ انه مسترگیه؟ ممکنه با انه مخفف از مسققله باشه؟ ها؟ مثل همون آیه داشتیم علما انسا یکونو من کن مرزا علما انسا یکونو من کن مرزا خبتیم اینها قبلن علما فیل زمین فائل انسا یکونو من کن مرزا ان مخففه باعث مخبرش این مستر محفظ صد ما صد دو مفعول علم صد ما صد دو مفعول علم کب <تصف> <تصف> <تصف> و علمه علمه برای چیه؟ علمه برای رعاه دوتا این علمه و رعاه لِل برای هر دو امر میان یعنی چی؟ یعنی هم برای شک هم برای یقین میان اما قالب کدومه؟ ول قال ولی یقین اما قالباً برای یقین نوت درصد برای یقین الان آیه رو نگاه کنید یه آیه مثال میزنه هم برای شک به کار رفته هم برای یقین ان روز قیامت رو یعنی یقین دارن یا شک دارن انهم و بعیدا یعنی اونها گمانشون برینه دیگه شک نه گمانشون بر اینه که روز قیامت چیه بعیده میگن روز قیامت گمانشون اینه دیگه که نکردن گمان دارن به این که روز قیامت یعنی دور قیامت کو او حالا مونده خیلی مونده. انهم يرونه بعيدا يعني یعنی يظنونه بعيدا اونا گمان میکنن که روز قیامت خیب. و نراه و غریبا و یقین داریم ما که روز قیامت چیه؟ اینکه قیامت واقع شد و نراه و غریب الان يرونه هم مفعول اول بعيدا مفعول ثانی نراه و خب مفعول اول قریبا مفعول ثانی اولی به معنای یز و و دومی به معنای نعلم و اینطور نیست یعنی مردم گمانشون بلینی که قیامت نیست خیلی دوره ولی ما گمانمون بلین نیست یعنی ما یقین داریم بلین که چی؟ قیامت زنه چی؟ میگه وزن و خاله خاله به شرطی که مزارش یه خاله باشه داشتیم یخال و فرا یر آخه خاله و حسبه که الان یه دونه من براتون از قرآن خاله و حسبه ما اینها هم هم برای یقین میان هم برای شک میان اما ولقالب و فیها از زن اما قالب در این تا چی زنه گمان نه و حسب تو زیدن قاه یعنی گمان دارن که زید چیه؟ قادمش اون مثالی که ما داریم احسبن ناس و انگیت یعنی چی؟ یعنی آیا گمان مردم بر اینه که بهلشون میکنه؟ آتل و و مورد امتحان و مورد سوال واقع نمیشه همان شد مسئلت و ازا توسطت بین المحتدع و الخبر اگر این افعال بین مبتدا و خبر و آقاشن چیچی میشه؟ الگاه صورت میگیره درسته. یا حتی اگه بعدش واقعشن چی میشه باز الغا صورت میگیره و میتونه الگاه هم صورت نگیره چون جایزه و ازا توسطت و اینا اله اول ای خبره او تأخرت انهما یا مؤخر بشه از مبتدا ها جاز ابطال و عملها ها جایز است این که ما افتال عمل رو بکو کنیم لفظا و معننا یعنی اون مبتدا خبر لفظا و معننا بشه مبتدا و خبر و مفعولین علم تو به قرینه اونهاشی بشه حاصل شه هستش کیه یعنی وقتی میگیم زیدون علم تو قائمون میگیم زیدو مبتدا قائمون خبر علم تو بهلا فاعل دو مفعولش حذف شده به قرینه زیدون قائمون که بوده علم تو زیدن قایمان هست شده چون قریمده داشته دیگه، درست؟ و این جمله علم تو این وسط میشه چی؟ بمتقصه اون که گفتم براتون مفعول این علم تو با قریمه هست میشن و اشکال ندهده دوتاش یا یکیش، اینجا چه نفسن و محلم و یوسما ما القاء این عملش بگن القاء، نه با زیدن علم تو قایمان زیدن قایمان علم تو. در صورت دومی دیگه جمله معترضه هم نیست. تا جمله است. اولش اسمیه دومش بگیه. اما اگه بر سرش یکی از چیزهای صدارت طلب ترده. مثلا نفت، استفهام، رام، به و همسال اینها. اون موقع چی صورت میگیره؟ تعلیق. چون اینها اجازه نمیدن افعال قلوب در موابعدشون عمل کنه. چون عمل کنه صدارتشون از ببینید در وسط تعلیق صورت میگیره تعلیق یعنی چی؟ یعنی لفظا فعل عمل نمیکنه چون اون عدبات صدارت دار نمی گذاره. ولی محلن چی کار میکنه؟ کنه؟ نست باشه و ازا دخلت علل استفهامه و اگر داخل بشه این فعل ها بر استفهام اول نف یا نف اول لام یا لام منظورش کدوم لامه؟ لام افتلاعیه لام؟ یا لام قسم، فرقی نمیکنه کنه اون هم است، اول لام، اول قسم چون قسم رو گفته دیگه میشه اول قسم وجب ابتال و ها واجب از عملش رو باطل کنیم لقزن فقط به شکل لفظی فقط، نه به شکل محلی، محلش هست و یوسم معد تعلیقه و این نامیده میشه تعلیق نه به حالا نگاه کنیم لَنَ عَلِمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ بعد از که ان بعد از لام لام به معنی نعلم فعل زمیر فاعلش یعنی نحن الان ظاهرش مبتدا احسا چیه فلان چي ایل هزبینه ایل هزبین مبتدا احسا فیل هست و زمین خواهدش این احسا افعال و تفزیل نیست چون اگه افعال و باشه بعد از ماده احسا گرفته شده باشه احسای یعنی آمار کردن شمارش کردن و از روبایی مز... چیز خلاسی مزید افعال و ساخته بگی نیمشون. چون فیلش احسا یحسی احسا انتعود دونه الله لا تو. سو، فعل مازیست و زمین پایش این جمله هم خبر اعی الان ایول هزبین محلا چیه؟ ایل لفظاً مرفوع بود محلن منصوب مفعول اول لنه علم هست احزا جملهش لفظاً یعنی در حالت لفظیش میشه خبر و مرفوع در حالت محلیش میشه چی؟ میشه منصوب و مفعوله ثانی لنعن. یه مثال دیگه میزنه بالام علم تو زیدون قائم. ظاهرشونه که اینا مفعول قعن. مرفوعن بود اما باطنا زید و قائم چی اند؟ منسوبن زید مفعول اول علم تو و قائم مفعول ثانیش. دلیلش همینه که شما اگه دو تا اسم دیگه عطف کنید بگید و امرن جالسا. اون دو رو که عطف میکنید یکیشو به زید یکیشو به قائم اون دوتا رو جایز مفعول کنید. تابعه چی بشه؟ لفظش جایز منصوب بخونید تابعه محلش یعنی شما میتونید بگیر علمت و لزیدان قائمان و امرون جالسون عطب بشه بعد لفظ و میتونیدن بخونید چی؟ و امرن جالسن و عطب بشه بعد از این که منصوب میشه عطب کرد و عطب بر محل درست کرد این نشون میده که اینها محلن تمام شد خاتمتون این یک است که باقه تنازع نام دارد و مرحوم شیخ بسیار زیبا اینجا بحثش رو کرد که لزوم داره خوب گوشکار بکنید چون افعال قرود رو ما بیش از حد این اون بیرها توضیح دارید. به جزبات قبلتون مراجعه کنید از هر دوتا کتاب قبلی بخوانید و با اینجا خاتمتون از تنازع آملان ببینید آملان میگه آملان که میگه ممکنه شامل دو تا فعل باشه ممکنه شامل دو تا اسم بشه ممکنه یک اسم یک فعل اسم منظور اسمی که بتونه عمل پس ازا تنازع ازا تنازع عاملان اگر نزا کنن دو تا عامل ظاهرا یعنی اسم ظاهرا یک اسم ظاهری بر یه اسم ظاهری دعوا کنن ازا تناز از آمدان اسمن ظاهرن اون هم اسم ظاهری که چیه؟ بعد اونها وانا شده قبلشون باشه نما بعدشون اینها رو خوب مثال مثل زیدون اول مثال فعل بزنیم که بهتر بشه زربتو و احن تو زیدن الان زرت تو فیل و فایله احنت چیه؟ فعل و فایله هر دو نیازه به چی دارن؟ مفعول سر زید چه کردن؟ نزار کردن این میگه بده به او من مفعول. اون مفعول اونم میگه بده بمیم؟ اینجا دوتا؟ فیل هم ممکنه دوتا؟ اسم باشه مثلا بگم انظاربون و محینون انظاربون و محینون زیدن الان او قدم الان زاربون و مهینون شرایط عمل رو دارن که کرده به مقتدار مانه ها رز در مولم هست پردو کردن سر چی؟ درست ممکنه یکیش اسم باشه یکیش فعل باشه مثل ها اومو اقرعو کتابی هم ها اومو اسم فعل. این قرع او چیه؟ یعنی بخوانید کتاب را چی حالا عراقیه ممکنه یکی هم و از همون دوتا مثالی که من یکی فعل بود یکی اسم میشه مختلف شده بسید پس دوتا آمل نزال کردن بر سر یک اسم ظاهری که با... میگه فلکر اعمال ای و ایه اعماشه خلاصی یکی از اینها باید در اسم ظاهر کنه؟ اول نمیشه که هر دوتا وارده این اسم بشن. هر دو بخوان عمل بکنن درست نیست میشه توارد عاملین بر معمول وارد اگه بخوان هر دو یه دونه معمول رو باشیم کنن توارد بر معمول وارد پس یکیشون باید عمل کنن میگه فلکه اعمار و ایه ماشه تا برای تو جایزه که عمل بدی هر خودو که دلت بخوان حالا یا اولی رو یا دو بومید. اما شرایط داره فلکه اعمال و ایماشه الا مگر الا ان البصريين یختارون ثانيا بصری میگن که دو ما رو به عمل بدین به درن دو بوند چرا میگن ل قرب هی علتش یعنی ل قرب هی الا الاسم الظاهر غر به بیمنر اسم ظاهر زیرا اون دوممی خیلی نزدیک به اسم ظاهره ال عاقایی هم اونی که نزدیک داره زود بر میدارره دیگه اصلا مانع میشه اون دورتره بیا تو عالم دنیا هم همین کسی جلوتر باشه زودتر چش میاد بهغررب چون اون نزدیک به معموله زود بر میدارره معمول. تا یکی بخواد بیاد به جنبه و یکی ده ده علت علت و عدم استلزام اعمالهی الفصل بله شما اگر دومی رو عمل بدید بین عامل که میشه فعل دوم و معمول که اسم ظاهره چیزی فاصله میکنه مثلا تو همه مثال بگید که زیدن معمول احل است چیزی باسه کرده نه ولی اگر بگید معمول اولیه بین عامل که ضرب تو باشه و بین زید که معمولشه جمله جمعه دوپومی چی کار بکنه؟ باسه نمی کنه نیست؟ بین عامل و معمول اجنبی اجنبی یعنی چیزی که معمول اینها نیست و معلوم جمله دوم معموله جمله اول یا معموله به جمله اول نیست فاصله آچی گفت گفت اگر بصریین میگن شما دومی رو عمل بدین مشکلتون از این جهت که فاصله بین عامل و معمول بیفته اونم به اجنبی حل یعنی چی یعنی اگر شما فعل دوم عمل دادی، عامل و معمول به هم چسبیدن اگه فعل اول عمل بدی بین فعل اول و معمول یعنی اسم ظاهر فعل دوم جمله دوم چکار کرده؟ فاصله کرد. که این فاصله را عجنبیزه و بین عامل و معمول اگه چیزی فاصله نکند بهتر است از این که چیزی فاصله بین عامل و معمول اگه چیزی فاصله نکند بهتر است از این که فاصله و عدم استلزام هی، هم میخوره به کی؟ ثانی و عدم مستلزم بودن عمل دادن دومی عدم استلزامش چه چیزی را؟ الفصله به درشن فصل به ها این ولعتفه عطفه است به جای استلزام یعنی اون عدم بر در دل... نیان یعنی و عدم العتفه علال جملت قبله تمام. یعنی اگر دومی رو شما عمل بدید ادف به جمله اول قبل از تمام شدن جمله اول نمیشه. چرا؟ چون جمله اول قبل از وا تمام شده. تو ذهنتون بسپرید اون عبارات ضرب و اهن تو زیدن رو جمله اول ضرب بوده تمام شده. جمله دوم اهن تو زیدن ما یه جمله رو به یه جمله دیگه عطف کردیم هیچ کدومشون هم قبل از تمام شدنشون نیست یعنی جمله دوم تمام شده و عطف شده به جای جمله اول. ولی اگر بگید اولی رو عمل اولی رو عمل بدید زرق تو میشه چی؟ معطوفان علی و احمدو میشه چی؟ معطوف شده به جای دیگه اون زیدن مال کیه؟ حال ضرب تو دیگه اول یعنی قبل از اینکه که اول تمام بشه همه معمولات و همه مشخصات خودش خودشو بگیره قبل از اینکه تمام بشه شما فعل دوم به اشتگاه کردید عطب. و عطب کردن به جمله قبل از تمام شدنش یعنی قبل از گرفتن تمام معمولاتش درست یعنی صحیح که هست اما حسن نداره تسب بنابراین اگر شما دومی دو را عطف کنید یه جمله به یه جمله دیگه هیچ کدونشون هم قبل از تمام شدنشون اما اگر اولی را عطف کنید بریم بدید به... معمول را بدید به اولی اولی عامل باشه شما قبل از اینکه جمله اول تمام بشه همه معمولاتش رو بگیره جمله دوم هش ول عطفه یعنی و عدم عطفه علی جمله قبل تمام ها قبل از اینکه که شد چی میگرد؟ این نظر وستیگین ولی کوفیین اتوه جای وستیگین اله اولا اختیار کردن چی رو؟ فیره اول رو گفتم فیره اول هم در این اول؟ میگه لسابقه ها؟ از صادقون از صادقون اولاهای گرد میگه اون فیره اول زودتر اعلام درخواست مخبور کرده زرفتو زودتر اومده به عالم وجود و گفته من مفعول لازم اگر تبقید نوبت باشه نوبت اول ماله لسفی این یک دلیل دلیل دوقم و عدم التزامهی ال ازماره قبل از دلیل دومشونی نمیگن شما نبا کنید الان این مثال رو این مثال خودیم بگیم اکرمانی اول بگید که زرفنی زرفنی بگیم که بعد دلست ضرب علی و شتمنی از زیدان ضرب و شتمنی از زیدان یعنی چی یعنی زدن منو گوش دادن دونا دو تا زیدان. خب نگاه حالا الان ضربنی چی میخواد؟ باهره شتمنی چی میخواد؟ باید. طبق نظر بسریگیم که می گفتن عمل رو به کدوم میدیم به دو به دومی اگر ما عمل کنیم از زیدان رو بگیم فایل کیه؟ شتمنی بعد فایل زربانی رو چی میاریم خوندیم توی بحث عبود زمیر به مرجع نوترخی در سور. اگر فایل بخواد چون نمیشه شه فایل عطفیه باید زمیر آمون می زربانی و شتمنی از زیدان میشه نمیشه ها؟ میشه نه؟ زربانی و از زیدان خب اون موقع چی میشه؟ عود زمین به مرجع متاخر لفظا بر رتبتاً میشه نمیشه؟ زربانی بر میگرده به زیدان مرجعش متاخره لفظاً رتبتاً هم الف زربانی بالاتره به چه دلیل؟ چون جو جوز جمله معتوفان علیه هست که ردوش بالاتر هست از جمله پس عود زمیر شد یعنی طبق نظر بسریگین عود زمیر میشه به چی؟ به جمله عود زمیر میشه به مرجع مترخل لفسی رو اگه قول کوفیین عمل کنید کوفیین چی میگن؟ عملو رو میدیم به اولی خب میشه زربانی بعد برای دومی زمیر بیایی میشه چی؟ زربلی و شتمانی از زیدان این الان عود زمیر به مرجع متأخر در لفظ هست اما در رتبه نیست طبق نظر کوبیین عود زمیر به مرجع متأخر در لفظ هست اما در رتبه نیست چرا؟ در درسته که زیدان معخره اما در رتبه زیدان جزء جمله اولیه مقدم کوفیین میگن قول شما مستلزم عود زمیر به مرجع متحفل لفظی رتبه ایه که این کار خوبی نیست و قول ما این محضوریت رو بگید قول ما عود زمیر به مرجع به مرجع نفظی رتبه ای لذا میگه چی؟ و عدم التزا و عدم ملتزم شدن این که ما عمل بدیم به اولی ما زمیر آوردن رو قبل از ذکر مرجع دفتن و دفتن این هم دلیل چی بود؟ گفتیم درست و ایه ما بیزنید بمونه اول احکام باب تناساره از خاندالله سی و هفته